خب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درس امروز مع شما تفسير سورة العصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر ترجمه سوره مبارکه ترس که خداوند متعال جل قسم یاد میکنن میگه والعصر قسم است به عصر یعنی زمانه ان الانسان لفی خسر به تحقق انسان در زیان و نقصان است الا الذین امنوا مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات و اعمال صالحه کردند و تواصو بالحق و تواصو بالصبر و دیگران وصیت کردن به حق و وصیت کردن به صبر کلمه عصر علامه ابن کثیر رحمت علیه میگه که منظور از عصر زمان است که حرکات بنی آدم در اون صورت میگیره به نان خداوند متعال جل با وقت و زمان قسم می خورد. ما و شما وقتی درس تفسیر می خونیم غالبا از هر کلمه قرآن از شان باید درس های را استخراج بکنیم. ببینیم که این کلمات قرآن چرا مثلا خداوند مطالبه به عصر قسم می خورد. و اگر خداوند به عصر زمان قسم میخوره آیا برای یک مسلمان جایز است که او هم به عصر قسم بخوره؟ یعنی <تصفح> خواندن قرآن باید فکر بکنیم و ببینیم که قرآن برای ما چی درس میده کلمه به کلمه اول خداوند متعال جل جلوهو قسم یاد میکنه به وقت چرا خداوند به وقت قسم یاد میکنه؟ علت اساسیش والله اعلم این است که وقت ما آیات زیادی را میبینیم که خداوند به وقت قسم بیاد کرده. وضحا وقت است. قسم به بوها. چش. و اللیل قسم به شب. و نهار قسم به روز. تقریبا در چندین سوره آغاز شبیه بینید که خداوند متعال به وقت قسم یاد میکنه چرا علت اساسیشی است که برای ما و شما مسلمان ها درس میده که اهمیت و ارزش وقت باید بفهمیم پیغمبر صلی الله علیه و سلام اساس تمدن اسلامی را گذاشت اساس تمدن اسلامی وقتی که در اسلام گذاشته شد مهمترین اثر یک انسان متمدن چی هست ارزش به وقت است دین مقدس اسلام تمام عبادت ها را پراگنده اجازه نمیده که انسان انجام بده بر نماز تقسیم اوقات مشخص بر ما داده نماز صبح چه وقت بخوانی نماز پیشین چه وقت بخوانی نماز دیگر و شام و خفتن اتنان شده که هر کس دل شد هر وقت بره نماز فرض خدا رو هر وقت که دل شد نماز فرضی و هر وقت دل شد سر نفل بخانه نه نه نه جدول مشخص در عبادت ها برای روزه تقسیم اوقات مشخص است بر هشت تقسیم اوقات مشخص است. کل عبادت ها در اسلام تقسیم اوقات مشخص دارند، تا ای که یک مسلمان 24 ساعت زندگی را با تقسیم زندگی بکنه امور دنیایی خوده و امور اخرویره کلش در چوکات یک تقسیم اوقات تقسیم بندی بکنه تا که بتانه از یک انسان متمدن جور شده پیغمبر سلام میگه که اگر یک کسی یک ساعت ده از عمرش تیر شوه و در اون کلمه خدا را یاد نکرده باشه و درود بالای پیغمبر هم نفرستاده باشه در روز قیامت حسرت میگونه و میگه خدا و حسرت کاش که اینمی ساعت در زندگی من وجود نمیداشت چون در روز قیامت دو سوال در مورد وقت میشه عمرت در چی سفری کردی؟ و جوانی در چی سپری کردی؟ دو سوال باید انسان جواب بتکن من وقت خدا در چی مصرف کردم؟ بنان کسانی که وقت خدا در قطبازی مصرف میکنند وقت خدا در کرمبول مصرف میکنند وقت خدا در شطرنج مصرف میکنند و باز میگن که من مسلمان متمدن هستم از پیروهای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستم و وقت اقدر پیش به ارزش است پیشه کسی که قرآن شناس است و کسی که پیرو امت پیرو محمد صلی الله علیه و سلم است بر وقت خود بسیار ارزش میده تمدن امروزی هم تمدن مادی تمدن مادی امروزی که متاسفانه از معنویت خالص اگر معنویت می داشت ارزش بسیار قوی می داشت اینمی تمدن هم اساسش چیه اساسش ده استفاده از وقت است گفتن که وقت باید چی کنیم گفت مثلا کار یک ساته در یک ساعت انجام بدیم. گفت نه نه نه نه یه نه. قسم نمیشه انسان متمدن باید کار یک ساته در یک دقیقه بکنن کار اندازی وقت شکل خرد ساخته مسافه ها را گفتم که چی قسم باید بکنیم انسان متمدن باید مسافه ها را خوردتر و کتاتر بسازه مثلا اگر انسان توسط یک از توسط یک شطور یا توسط یک اسب یک شبانه روز به میره خواستند که ایره توسط موتور یک شبانه روز شب و سی تبدیل بکنن توسط تیاره خواستن ایره به نیم سات تبدیل بکنن و کوشش میشه که توسط راکت های قاره ما این مسافره بیخی کوشکتر بسازن که بتانن حتی آل فعلا در تکنولوژی معاصر از سال‌های از ساعت‌هایی که ما و شما استفاده می‌کنیم از این سال‌ها استفاده نمی‌کنیم که از سال‌های نوری استفاده می‌کنند. و این استفاده رو باید مسلمان ها شر بکنن به خاطر ازی که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج و سفر رفت وقتی که روایاتی که در باری از سوره انسان مطالعه بکنه کلمه سه کلمه در او استعمال شده کلمه برق براق رفرف و نور میگه پیغمبر سلام توسط براخ رفت بلاخره باز یک قسمت رفرف رف شد یک قسمت راکت مثل برقوار حرکت میکنه بلاخره باز نصفش جدا میشه به شکل رف, رف حرکت میکنه و بالاخره در امواج نور سالهای نوری که آل تکنولوژی معاصر سر از او بحث میکنه. اینال یک مسلمان پیشرفته و متقدم باید از ای با خبری های پیغمبر صلی الله علیه و سلم استفاده میکرد ولی ما متاسفانه روایت درست نمیخونیم اگر قرآن هم میخوریم قصه های قرآن خانده میریم و برای قصه گریه میکنیم برای قصه گریه میکنیم اگر کدام شخصیت ماش قهرمانی کده شهید شده و قهرمانان مرده مرده ایوز که از قهرمانی شیاد بکنیم از مظلومیت شیاد میکنیم ایش که قهرمان بود تمام روز خود رو بزن سیلیگک بزن او رو بزن اینه این ای چیزا شده یا قرآن ه خدای عزبا در کدام جای گفته که 786 سری کسایی بازی که بسم الله الرحمن الرحیم بگه 786 خلاص بالا دیگه نماز چی قسم می نیت کردم بخورم دور که از فرض صبح ببین از هم ارقاش پیدا میشه. 62 45 71 33 به این شکل میشه. دیگه باز هر کلمه را به چیز خاندو منه خلاص نماز ما رو ما به فالبینی تعلیل کردیم. 786 و 454 رو رو کردن. کالای مردم مردمای فالبین است. این فالبینی ها رو کنیم ما. بیچاره چی خدا که ده هزار مرتبه 786 موگی اگر یک شانزا پولی ثواب بگیری میگه اون دو استرده خدای ناراض اون دو مانده است خدا چیست ناراض است بسیاری کسی نه ما خدای مانده میکنه میگه پا ما چرا, چرا ما این کارا را میکنیم بخاطر ازی که ما امت متقدم و پیشرفته رسول خدا که بودن نیستیم صحابه اکرام اونا چی شدن؟ عزت عمر رضی الله تعالی عنهو دارک مجلس وقتی که میامد چی میگفت میگفت کننا برای کابینه خود عزت عمر چی میگفت میگفت کننا رعات الغنمی او کابینه مه او مجلس وزران فکر تان باشه کننا رعات الغنمی ما شما کل ما گزفن چران ها بودیم فا اصبحنا به الاسلام قادت العالم ما به نعمت قرآن رهبرای قماندانا و رهبرای جهان شدیم والیها شدیم دنیا را کلش دنیا را مسلمان ها در دست خود داشتن حتی امپراتوری روم برای مسلمان ها جزیه میداد داد رشیدی که امروز بسیاری کسا سر ازو تفسیری منفی میکنن و کسایی که خودش بیچاره دادان در حاضی امریکای بادی بادیگارد است او بادیگار رشید گپ بزنه که آرون رشید پادشای روم پیشش دروپه برش سلامی میداد چون ما تخلف هستیم ترقی های عالم رو به بالاست ولی ما سوی پایان میترقیم ما طرف پایان پیشرفت کردن بیریم. به با طرف بالا نمید. چرا؟ خاطر از که اگر ما قرآن بخوانیم، امام شافی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه اگر یک مسلمان تنها سوری والعصر به شکل درستش بخوان و به معنایش فکر بکنه و زندگی 24 ساتی خودم مثل اینمی سوری والعصر بسازه همی کفایت میکنه از کل قرآن؟ <laughs> کل ایمان خلاصش در می از که والعصر عصره خداوند قسم یاد کرد بس چی به وقت که ای مسلمان وقتت ارزش بده تو منایی یک جوان مسلمان بر تو شایسته است که تو کلم بول بکنی تو منعیس امت رسول الله صلی الله علیه وسلم برسید شایستنیست که تو وقت تا دقیق توازی بکنی این بازیچه های یهود و نصار هست می را از شخصیت ایمانیت بیرون بکشید وقت تا را به ارزش بسازد از این خاطر پیش یک انسان عقب مانده و متخلف چیز به ارزشترین چیز وقت است و پیش یک انسان متقدم قرآن شناس بهترین چیز وقت است همیشه وقت خدا اتا یک روز یک, یک انگلیس میگف میگف که The time is gold وقت تلاست من گفتم نه نه نه It is not true یه غلط است گفت شما چی میگی ما میمیم نه گفتم یک مطل احمقانه لوده هاست خیلی چیست گفتم نه بیمیم من برد قناعت میدم پار سال 200 گرم گرام تلا داشتم دوست گرام تلاهی منت دوست برد درست؟ امسال زحمت کشیدم پس دگه پیسته پیدا کردم. عوض 200 گرام طلا 400 گرام طلا خریدم. پس من تانیستم که 200 گرام طلای که از دست مرفته رفته بود طلا رو پس بده ساوردم با زحمت کشی پیسته پیدا کردن اما دیروز من نماز نخوندم دیروز من قرآن نخوندم دیروز زندگی من گناه تیر کردم امروز اگر خودت تکات تکم کنم دیروز یک ساعت پس بده ساوردن نمیدون دیروزت که تیر شده و او رو در معصیت خداوند تیر کردی ایره اگر نفستان بکشی ازا جا عجال هم لایست اخیرون ولا و لایست قدیمون بسیاری کسای هستن که میلیون ها دارن در دا وقتی که اسرائیل علیه السلام جانشه میگیره میگه کل سروت من میتون من پنید دقیقه وقت بتین بهشت میگه نه, نه نه نه از این خاطر تایم مثل وقت نیست انگلیس که دفاعی درست است در افغانستان ما از یتر انگلیس متلای استعمار در, در, در شخصیت ما بر ما و تو رواج میده موسیقی غذای روح هست نه گفتم نه این موسیقی غذای روح برای روح شیطان است انسان‌های شیطان صفت روحش باشی شی تغذیه میشن با موسیقی لودگی چون کلمات زشت و احمقانه ای که منش گفته میشن کلمات بیمانا چون آره شاعرایی که این خواننده‌ها را میکنن روی مثلا کاغذ واره و ماشین بنیت مثل قلم واره و چه تراک بیمانا چیزا را هم جور میکنن ده وقتی که روحی عزیز شاد میشه این روح شیطانی است پس غذای روح در اسلام چیز قرآن عظیم و شان است الا بذكر الله ا تطمئن القلوب قلب ما روح ما با چی اطمینان پیدا میکنه با یاد خدای عزوجل و قرآن بزرگترین ذکر خدای عزوجل است بنا والعصر خداوند قسم خورد به زمانه در چندین سوره به وقت به خاطر که ما ارزش چی رو بفهمیم ارزش وقت هم. خب سوال دیگه که مطرح میشه در تفسیر از اینکه آیا برای یک مسلمان اجازه هست که بغیر از نام خداوند مطال جل جلوهو اینجا خداوند به اصر و به زمانه قسم کن آیا برای ما اجازه هست علماء آیات قرآن احادیث پیغمبر و علماء اسلام میگن که نه خیل قسم کوردن بغیر از خدا در حدیث شریف آمده بکست دیگه شرک است. به خاطر این که چون خداوند خالق است هر چیزی که به نظرش خوب است خاطر رهنمایی ما خداوند حق داره به هر چیزی که خواست قسم بخوره اما انسان به چی قسم میخوره انسان مسلمان؟ انسان مسلمان قسمش فقط برای چی هست؟ به ذاتی قسم میخوره به کس قسم میخوره که او بسیار به نظرش عظمت داره اهمی قسمم که مسلمان رکو میکنه سبحان ربی العظیم با کس سبحان ربی العظیم یک او برش عظمت داره سبحان ربی العلا سجده وقتی که میکنه بر کسی میکنه که او عظمت داره دست دعا را در مقابل کسی بالا میکنه که او برش عظمت داره بناان ذات با عظمت پیش یک مسلمان کی هست یک ذات است که او الله جل جلو است. بناان ما مسلمان ها با اساس حکم خداوند متعال جل جلاله حق نداره که بغیر از نام الله به چیز دیگه قسم بخوریم اگر قسم کس میخوره و سرت قسم است میگه ایراد شریک ساختی با خدا قسم از بسره بچم شریک ساختی با تا با خدا شرک کرد قسم خوردن بغیر از الله و هر چیزی قسم بخوری این شرک گفته شده در احادیث بنان قسم از بسارت قسم است مثلا به شرافتت قسم است به فلانیت، قسم است به چطورکایی این قسم قسمهای غیر اسلامی است و بر مسلمان اجازه نیست ادو قسم بخورند پس ما مسلمان ها فقط اول کوشش میکنیم که قسم نخوریم ولا تجال الله أُردةً لأيمانكم خداوند میگه که الله تعالی را برای قسمهایتان شما ادو وسیله نسازید اما اگر ضرورت پیدا کردیم که قسم بخوریم پس باید با کی قسم بخوریم فقط با الله جل جلو کس دیگه با الله شریک نسازین یعنی قسم که برای کس تعظیم نمیکنید به غیر از الله برای کس رکوع نمیکنید غیر از الله سجده نمیکنید به غیر از الله ده سو دعا برایش بالا نمین، یعنی قسم قسم هم نباید به غیر از الله به کسی دیگه یا قسم یاد کنی خوب ان الانسان لفی این الانسان این چه ایره حدات تحکید است ببینن دو مرتبه تاکید میکنه یک مرتبه با قسم خداوند قسم میخورن چرا قسم میخورن؟ که او انسان بعد ازی چیزایی که من بسیار دقیق از فکر بگی او مسلمان او کسی خوران شریفه میخونی بعد ازی من قسم میخورم که <تصفح> ای بسیار دفاعی مهم مهم است متوجه باش باز مرتبه تا باز تحکید میکنه توسط از این نه انا را علمای نحو میگن که عدات توکید ایچی هست؟ حرف هست بر بسیار جمله را تأکید کردن تأکید میکنه باز که انا الانسان لفی خس انا الانسان انسان که است؟ دیگه میگن انسان الفلام در انسان که هست اینه میگه الفلام جنسیست چی مانه؟ یعنی جنس انسان زن باشه مرد باشه جوان باشه پیر باشه به با هر سنه که باشه وقتی که در سن مسئولیت قرار گرفت میگه که ان الانسان جنس انسان که هیچ کس از این خالی نیست که کسی بگه نه ولی من صاحب نواسی حضرت اباک صدیق قسم تاویز میتود بودی گش بگه نه ولی من رسیدم به آسمان هفتم مز نماز خلاص هستیم. نگه جنس نامت که انسان شد کل هر کسی که سر اگر نامت انسان نیست انسان نیستی سیز اما کسی که در جنس انسان است ما کل شامل چی هستن ان انسان به تحقیق انسان بدون شک باید اینو به تاکید میکنه خداوند که لفی خو اینجا لام میگن باز لام تاکید است یعنی خداوند سه مرتبه یک جمله رو تاکید میکنه با قسم با ان بالام میتوکید میگه این سه مرتبه براتون تاکید میکنه که او انسان بفهم که در زیان هستی او انسان بفهم که در نقصان هستی او انسان متوجه باش که در به طرف نقصان در حرکت هستی خب یک از سوال میکنم میگم من چی در نقصان هستم ما هر روز به روز این پارسال صرفه آور بده امسال صرف دو میشم پارسال 500 کم داشتم سال 500 زیادتر پیدا میکنم مثلا درس پارسال 20 کیلو بودم مال 5 کیلو شد هیچ نقصان نشد نه خای نقصان از چی است میگه به خاطر که تو عمرت درست محاسبه نمیکنی یک نفر میگه که کالان هستم یا دو کالان هستم آل ما کالان هستم یا انس کالان هستم من میگم نه انس کالان است شما مگید که نه شما کلان هستین چون ما سرچپه میزنجیم چرا اناس کلان هست فکر که عمر ما و اناس اردوش شهت سال باشد به نه اند من سال عمره خوردیم چند سال دیگه اش مانده عبده. عبده سال دیگه مانده بس ما عبده سال که دیگه وقت دارم <تصفح> او که خوردی خلاص شد او که تیر شد هیر شد <تصفح> چه تیر سو هیر سو <تصفح> <تصفح> اممرره که آ فعلا تو داری من 10 سال نه ساله هست چند سال وقت دیگه دا دارن؟ 5 و, و یک سال دیگه ای وقت دارمره ببینن 5نج و یک سال وقت دارم اما من چند سال وقت دارم؟ سال. کدام ما کلان هستیم از نگاه وقت داشتن؟؟ عناس. عناس؟ از نگاه قانونی؟ وقتی که ما میریم پانتون کابل میرم، پانتون میریم مزار میریم هیرات میریم وظیفه میریم مزد میریم پس می می می می خب امی خط سیر ده که اگر ما شما نقطه آغاز و نقطه انجام بسنجیم نقطه آغاز و نقطه انجام از کجا آمدیم از بطن مادر تولد شدیم آغاز زندگی ما در دنیا این بطن است کل <تصفح> زندگی ما چیست بین یک آزان و اقامت با بین یک نماز با نماز شروع کردیم با آزان شروع کردیم آزان در یک گوش ما اقامت هم در گوش دیگه ما در کجا ختم میشه به نماز جنازه پس فرصت ما بین چی هست کلوم ما بین آزان اقامت و بین شروع نماز خب آغاز بطن مادر بود انجامش چی هست انجامش به بطن زمین از یک بطن برامدیم به وقت در حرکت است. بنا از موتو هر روز هر قدمی را که میگذاریم، به طرف زندگی در حرکت زمی یا به طرف مرگ، به طرف بقا در حرکت هستیم یا فنا، فنا می‌یابیم به طرف آزیک خدرو خداوند مطالعه که او انسان. ما قسم به وقت خوردیم. ای وقتی تو بسیار ارزش بده، ای وقتی تو بسیار ارزش بده. پیش بیشینه که سانیتی چیه؟ اینجا بیشی گیج خودت وقتی که داخل آن رفتی یک تعمیر برد ترسیم کو. اگر نمیتونی معسلین مهندسی زیاد هستن بعد تنک دارن تعمیر ترسیم بکنه کاش که معسل برای ما یک نقشه را جور کن از عمر خود یک تعمیر هر کس یک تعمیر 70 ساله 70 منزله بر خود جور کنه تعمیر 70 منزله از این تعمیر 70 منزله ای که هست شما ببینید که هر ثانیه یک خیش ازی سقوط میکنه افتاد منزل تعمیر داریم. در دا هر ثانیه یک خشت از چی میشه سکوت کرده میره بنا اندر 24 سات عمر 84.600 ثانیه عمر ما از دست میره 86.400 سانیه یا یونت عمر ما روزانه از دست میتیم گب بزنی یا گب نزنی نماز بخوانی یا نخوانی این تلفن موبایل عمرت مثل تلفن تیلیفون دیگر نیست که میگی نه دگر مسکال وردگر هم مسکال داره برو از دگر مصرف شه و از تو مصرف باشد نه این عمرت خواستی یا نخواستی اوکی شدگیست هر روز اشتاد و, هزار و یونت هزار تو یونت از بین میره نقص است یا فایده نقص است به طرف نقص نیست عمر انسان میره اگر به حساب خشت تعمیر بگیری افتاد ساله خشت هر سانیه که از اسمیتی این تو سکوت کرده میره امیال بیبی که چند منزل خانه خراب است اگر اجده ساله هستی اجده منزلت ساقط کرده اگر مسلمان ما ورد ساله هستی چلسه منزل سکوت کرده چند منزل عمر ما مانده ولی انسان مسلمان چی میکنه انسان مسلمان انسانی که این خشت‌ها را که خداوند میگه ان الانسان لفی خس انسان که در زیان است و انسانی که خشت‌های تعمیرش سقوط میکنه و او رحمت اعلی میته 15 تا اش از دخترای فیلم ایندی میبره 20 تا اش از بچای فیلم ایندی میبره روزانه ها <تصفح> یک ساعت یک و نیم ساعت صاحب سریالا خشتا خود برده میرن متواجی هستن نگاهش صاحب فکایا میبره نگاهش صاحب کرنبول میبره بالاخره صاحب می می میکنه که از خشتا که سکوت کرده اما دو نفرا حسن معترا سور است با چای فیلمم که برده میره و که کرنبول فروش هم میبره و تکتلاو تریام میبرهشون برده میره برده میره برده میره برازی بیچاره خشتا شش نمند الا الذين بعضی خداوند متام که نخ خل... ایر او جوان های مسلمان شما متاثر نشید. شما در زیان نیست علمان باید که عدات استثناء و عدات حصر است عدات استثناء است یعنی از این نقصان جدا میکنه کی جدا میکنه کسانی که سه صفت داشته باشه اگر سه صفت داشتی باز این خشتی که سکوت کرد ایچ رای نزن هر خشتی که اینجا از تعمیر دنیایت سکوت میکنن اونجا تعمیر آخرتت برایت آباد میشه بنا ان مرگ برای تو زندگیست رفتن به اون دنیای دیگه بر تو جیرخونی نیست یک کسی آمد از یک عالم پرسان کرد گفت سای ما چرا از مرگ میترسیم گفت خاطر ازی که دنیایتان خراب کردین دنیای تان جور کردین آخرت خراب کردین از این خاطر شما از آباده و ویران کی خوش از که برن اما اگر تو آخرت تا جور کردی باز هیچ مشکل نداشت از این خاطر بسیاری از دوستای خداوند میگه که مرحبا بالموت خوش به آمد مرگ هر وقت که به هیچ دقیقصه ایش نیستم که اجا از سباها ام مساها او نصف لیل که شد مرگ جان صبح آمدی؟ دلت شد پیشین آمدی دلت خوفتان آمدی دلت, دلت نصف شد ار وقت که آمد ازرایل علیه السلام میگه که احلا و سهلا اما یکان یکیست که چون در گناه و در غضب خداوند مبتلا هست امجرد بجموعی که مرک مرک و مرگم الموت و بغتتن مرگ ناگهان میه و قبر صندوق العمل و قبر صندوق چیست میگه ما صندوقی هستم که در من عمل کار است بچه کی هستی قبر پسرکم وقتی تو را در قبر نهند نگویند که پدرت کیست گویند عملت چیست زمازو یکلت چی قبر که دی نولتان پختنان نگیگه چی پلار دی چو کم کم دا کدام خیل بودی بکوم خیل که و نه لدین پختنه کی پختنه کی عمل نیست او اناله انسان مسلمان چه میگه خداوند متعال برای ما میگه الا که ال سه صفت داشته باشن وقتی که خشت این تعمیرش افتاد فورا این خشت خدا گرفته اونجا چه تعمیر دیگه خدا جور میکنه از که اثر از ازی تعمیر کدا چی میشه این سه صفت چی است الا الذين اول ایمان است این حال اینجا چی است؟ اعمال قلبی چی است؟ ایمان است که انسان ایمان داشته باشه چه قسم ایمان داشته باشه؟ آه ایمان... ایمان مادر کلانی نی مادر کلان ها نشنه ایمان مادر کلان ها نه نی داز از وقت اگر در تیدیران بشنوان چی میگه هم بگه ایمان مادر کلان دی مادر کلانو بسیاری کساس مادر و پدر کلان که ایمانو خدا گرفت اگر مادر کلانش دقیقه آرام داخل شده بود اگر مادر کلان میزم ماشه کرد پوچه دی نمیگه که ایمان خود من ساختیم یک چوب است ولی چرا ماش کنم ولی مادر کلان ماش میکرد این ماهه قل فهم در کلی خود دستم فکر که آلما همی چوبه چرا ماش میکنم این چوب چه کرامت داره چه عزت داره ولی قد کرم ناخداون چوب گفته یا بلی آدم اگر کرامت بداخل من انسان هستم اگر چوب کرامت داره پس نه چوبه ماش کنم چوبه من اون دو میگم اگه خلف تو چیز خود هم ماش میکنی ما هم ماش میکنم من تا چوبه سر داره از تو این را انسان مسلمان فکر میکنن که ولی ما عقیده خودم ایمان خودم ایمان قرآنی بسازم وقتی که خدا میگه که من رب العالمین هستم خلاص خداوند رب العالمین است من در مقابلم نقشه قریه خدا نمیمانم که من از فلانی قریه هستم زبان ما فلانیست تمام روز بدو که نه اوش میگه پوانتون اوش میگه دانشگاه او میگه پانتون، او میگه دان باز که بهش نشتر کنی بگه مسجد نشتر کن و شمی کرد جیم دال. انسان مسلمان وقتی که قرآن از این میشون روزوال که گفت که الحمد لله رب العالمین پیش روی میز خود نخشه دنیا رو میمونه خدای من رب العالمین است و ما مسلمان جهانی هستم انترنشنل این حاله اینجا ایمان فکر و اندشه و قلب یعنی انسان مسلمان اولین شر نجات چی است که انسان فکر خدا و اندیشه خدا و قلب خدا از خرافات نگاه کنه از خرافات از رواج های باطل نگاه بکنه رواج ماست که ما مرغ زیر پای عروس ذبح می باز خونش رو در پای عروس میذنیم این کار کاره بت بود, بود که مرغ زیر پای بت خود میکشن باز خونش رو در غیر بت میذنن پس ما این ترک کنیم دیگر اگه ما ایمان قوی دارم باید دیرتر کنم خداوند گفته که اما من یجیب المطر را ازاده کی میتانه وقتی که مشکل داشته باشی اجابت بکنه در حالت بسیار استراری و مشکل کی میتانه که تا دعای تو را قبول بکنه؟ الله هست کسی دیگه نمیتانه پس این مسلمان باید, باید باید که مشکل کشای ما و حاجت روای ما رب العالمین هست پانیم از یک پایی که مادر کلانایی بود رو یک ذرا کشمشه قطع نخاط میگیره این نظر مشکل کشه هست قطع کشمش نخاط مشکل کشه هایی میشه خیلی کشمش نخواد فروشو، خیلی باید خوشحال مشکل‌کشا باشن دیگه. ها؟ منم ده پیش هرناقدر دو کاری که تا من کشمش نخواد فروشی داره، بورو بگین صاحب یک بورجی کشمش اون سر پرتاو، یک بورجی هم نخواد، گور رو زیر کشمش نخواد، اینا یعنی مشکل تو میگه باز مشکل دروست، چارشان میشه یا نمیشه از این خاطر باید عقیده خدا، ایمان خدا، ایمان قرآنی بسازه. این شرط اول است. ایمان توحید قرآنی از قرآن بگیرین که قرآن چی میگه قرآن برای چه قسم مخاطب قرار میده تو بگو با استاد امی قرآن توحید چی قسم برای من میگه میگه قرآن برات میگه که اول توحید ربوبیت باید بفهمی ربوبیت چیست یعنی افعال خداوند خلق کننده الله زنده کننده الله میراننده الله روزی دهنده الله کلی چیز رو باید بفهمی الله جل این تو موحد هستی اما گفتی که نه فلانی جان بر من یک بچه بته؟ ها شاد را جان برو مگردم و کپت شاد شمشیرا میگم من خودم اگه بچه دادم اگه بتونم به خود میدادم ها خدا یک دفعه زنده میگم پیر شدم قرار لوکسه 호텔 بابای ولی تواب میخوردم من خودم اینجا زیر کوت خاک هستم تو اومدی بر من خودم به خداوند تمام رو سجده میکردم برو گف شو بر نابت نگو ایناله چیست تاوید روببیت تاوید اولوحیات چیست تاوید اولوحیات اس که عبادتت مخصوص به الله جل جلاله سجده عبادت هست بریکی به با الله رکوع چیست عبادت است برای به با الله سر خدا خم کنیم برای به با الله دعا می کنم دست خدا بالا می کنم من کمک بکو کی بکنم الله شوکر میکنم الله اولاد بتی الله هر چیزی که خواستم در مجموع تمام عبادت ها را چیزی که نامش عبادت است گردش خط میکشیم و این مخصوص میسازیم به ذات الله جل بنابراین بدان ما در عبادت خود یک تا پرهس شدیم اسماء و صفات خداوند عین چیز عبادت هایی که به نام های خداوند جل جلاله جل میشه با صفات خداوند جل جلاله جل می ولی والا تلفنیتون خیلی برقکی است برق افت دوم شروع شد فان چیزی نیست. بنا ان خداوند به خود تشبیه نکن و خود به خداوند تشبیه نکو اون وقت تو می میشی خب و ایره و الصالحات اینا علامه ابن کثیر میگه که و عامل الصالحات و اعمال صالحا کردن به هم با اعضای بدنشا بنا ان تو از نقصان خلاص شدی عقیدت خوب ساختی عقیدت عقیده قرآنی است چیزی که قرآن گفته خلاص گفته ما را گوش نگی گفت من ما یک شونزه ارزش نداره دیروز یک کس از پیش ما سوال کرد گفت که والا صاحب امی چی میلاد النبی صلی الله علیه و علیه سلام ما که شعلہ پخته کنم نظر ما این است که در این روز عبادت کنیم ما گفتم بیبی بی جان نظر تو نظر مرا رد و گف شد یک حلتای کسافات برو بزن ما ارزش نداریم نظر ما مسلمان رو که خراب کرد نظر من و نظر تو. این نظر یاد. چی ارزش داره قرآن عظیمشان و سنت رسول الله صلی علیه و وسلم. در قرآن و در سنت اتنامه که پیغمبر گفته که در روز تولد من که در اون روز باز فوتام کرده شما بخیزین صحیح شولت بخطه کنید. نا آمده. اگه میامد با خدا اول شولت ساید یک که دیکن پیدا کنین که کدام حدیثی که باشه که پیغمبرم گفته بغی روز مولود من شعلہ بوخته کین یا اینکه صاحب پیسہ کل تان جمع کین خیرات است با صاحب ازو کسی که خوب شکمش مش کتاکر است باوجودم از مسجد مسجد هم سیاق و روز چوباز چه با خودش خودش پیسہ میدن پنجو رو تا کمک داده کینیم صاحب پلو میخوره اینو چه گلیم یعنی روز مولود خیرات کردین و اونجا مردان در زیر خیمه‌ها در زیر خیمه‌ها مردم غریب از گشنگی میمردن از خنوت میمرد به کمک نیاز داره تو کلمات رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی 24 سال شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست در شخصیت خود ولکم فی رسول الله اسوه حسنه یعنی عمل بالجوارح هست اول ایمان رو دوم عمل بکن چشمتا باید مثبت استعمال کنی زبانت مثبت استعمال کنی بسیاری کساس خوب خود مسلمان میگیره اما از خسران خلاص نیست چرا وقتی که گپ میزنه که یک نفر برابر شد مجالیت که گفت میزنه ایوازه که یک کلمه خود برش بگه ددانش کلمه زشت است که دوست خود با دو سلامالیکی میکنه و داو دو میزنه و هم دو میزنه بازیگانه که نشنوان نشنون دوسای درجه یک باز ها سر خانما و خواهرای های خود هم مذاق میکن این و دیوس در عربی دال یا سین میگه بعضی کس ها منو میگه این کلمت چطور است خوشیدو کنم گفته بگه از وقت تا وای که کسی که سرخانه خانمو خواهر خود مادر خود همسر خود مزاح میکنه کار بسیار سشت است بسیار نارواه است برن ماید صبحان خدا باید در وقت کف زدن یه نفر رو برشاد کنی یک دقیقه میگه آه اما فلانی چطوره کهی رو تو مسلمان هستی. به مسلمان زبان خدا حفظ کنن اگر میخواید از خسران خلاص شدیم چشم خدا مثبت استعمال کنیم گوش خدا مثبت استعمال کنیم گوش خدا برازی نداده که 24 سال موسیقای مبتزل بشنیم گوش خدا قرآن بشنو در حلقی درس اشتراکو درس تفسیر بخوان درس حدیث بخوان علوم بخوان قویب ساز خدا در مقابل دشمن های اسلام وعدو لهم مستطعت من قوه باید قوات اقتصادی داشته باشی قوات فیزیکی داشته باشی قوات علمی داشته باشی در تکنولوژی دسترسی داشته باشی در ایمانت قوی باشی باید این کل قوات ها در مجلی یک جای گوش گوشتا برزی استعمال بکن قلبه ت مثبت استعمال بگو دو ستا مثبت استعمال بگو پایده مثبت استعمال بگو از این خاطر ایچ میگن و عمل با اعضای بدن انسان بنام تمامی اعضای خدا انسان چیکار میکنن مثبت استعمال میکنن و تواصل بالحق و تواصل مردم از سومی کار چی اولش ایمان بود دومش خود انسان اعمال صالحه بکنن سومش و تواصل بالحق و تواصل بالصبر کلی دعوت میگن او مسلمانه که میگم من خودم در جنت برم این خداقن در جنت روان نمیکن بگو خدای من امرای اینمی مسلم امت به جنت رو اگر یک نفر در شوروی کافر میماره تو بگو با... چرا کافر مرد کاشی برش دعوت میکردیم که مسلمان میشه. خوش نشو که فلا این نفر کافر کافر مرد یک کس آمد به شکالم گفت که استالین مردار شد میسه خوشحال بود خدا که شیطانی ساخت. شیطان هم خوشحال شد که یک انسان اولادی آدم کافر مرد و تو هم خوشحال میشه انسان مسلمان همیشه و تلاش میکنه که دیگرها را دوست نماز نمیخونه دوتش میکنه به نماز به دوست به یک مرز مبتلاست اینوی بیمانی ایمانی خودش یک مرز خطرناک است دعوتش میکنی که ای از مرز خلاص شد پس او وقت تو نجات پیدا میکنه که خود ایمان داشته باشی اعمال صالحه بکنی و باز در دعوت دیگران به حق حق چی نمیگن؟ عدا و طعات و ترک, و ترک المحرمات عدا و طعات. حق چی است؟ و تواصاب بالحق اینجا میگن که تواصاب بالحق در تفسیر تبری میگه که الحق و کتاب الله حق چی است؟ الله جل کتاب الله جل جل جل بنا مردم دعوت کو به کتاب الله جل جل و در تفسیر ابن کثیر چی میگه این میگه که حق چیز عضا و طاعت و ترک و المحرمات کارایی مثبت بکنین چیزی که خداوند گفته بکنین او را انجام بتین و از چیزهایی که منه کرده از او هم خودت منه شوی و هم دیگرها را نسیت بکنی و تواصل و به و اینجا دیگه وسیعت بکنه مردم هم بس چه قسم؟ وقتی که سرت کدا مشکل آمد سبر بکنی سبر سری قسم هست صبر در طاعت صبر در مصیبت و صبر در اذیت و مشکل صبر در طاعت چی هست؟ انسان مسلمان همیشه سبر داشته باشه در طاعت چه قسم؟ چه قسم بفاهمید من سبر در طاعت دارم یا ندارم اون کس که صبر در طاعت دارد درکات نماز خواهد در دقیقه میخونه به طریق پیغمبر صلی الله علیه و آله سه مرتبه سبحان ربی العظیم سه مرتبه سبحان ربی الاعلا 5 مرتبه هفت مرتبه میگن عین ای صبر در طاعت آیات قرآن پیغمبر صلی الله یک یک آیه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم این قسم پیغمبر صلی الله علیه و آله میخونه سران آیات استاط میشه اگر تو مثل پیغمبر صلوات صبر داشته باشی یک قسم نماز می‌خونی اما این نفر میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحمان و مالک یوم الدین یا ک نعبد و یا ک نستعین ادنا صلات المسافرین صلات العازمین همین کُلش یک نفس خال. پس این صبر در طاعت نداره بنا انسانی ک دومچه صبر در معصیت است صبر در معصیت است که انسان خود عادت بده وقتی که گناه در روش می بر ازی گناه افساله بکنه و از این گناه خود دور بسازه چه از این گناه خدا دور میتونیم بسازیم که باید از وسایل گناه خدا دور کنیم بسیاری کساست میگه حالا ما میخواییم که چیز داشته باشم صبر داشته باشم چه صبر داشته باشم میگه حالا اصولانی گناه میخواییم که صرف نظر بکنم لیکن نمیشه پیغمبر سن بر شما جوانا چه چی میگن؟ پیغمبر سمه میگه یا معشر شباب یا معشرش شبابی بخوام که الان تا که سر سرمی زیر زبرم مکم مو با میگیرم یا معشر شبابی من استطاع من کم البعتم فالیت سوی کسی که امکانات ازدواج داشته باشه ازدواج بکنه پیشت از این اگر تولا چطور است و چنان است اگر در وقت ازدواج بالای انسان میفهمه که اگر من ازدواج نکنم امکانات مادی هم داره و امکانات جسمی هم داره و میترسه که اگر ما ازدواج نکنم مبتلا به حرام میشم این چه سرش جواب ازدواج بکنم اگر نمیترسه امکانات داره لالا که نمیترسه این چه سرش سنت است باید سنت پیغمبر رو تطبیق بکنم ازدواج بکنم خب اگر کس نتوانست پیغمبر سلام علیکم به شما روزه بگیرید چه روزه بگیریم؟ انسان مثلا در زمستان بکار هستی شیطان زیاد در جانت میاد کوشش کن که روزه نفلی بگی وقتی که روزه نفلی گرفتی ارتباطت با مسجد گرفتی کت آلمه ها از وسایل فسق و فجور خود دور سختی خود خود شیطان هست بشت میکروزه وقتی گفتی شیطان در پالیت از کجا میری به مسجد میریم کجا؟ مسجد ما کمی گفتی مسجد بریم شیطان از بهشت گرفت که گفتی قرآن میخوانم شیطان از بهشت گرفت میرم در دست بخاری شریف میشینم اگرچه شیطان اموجا میلایت نمیتم تا صد حال چی میکنید دست بخاری را به مشکل عابته حال بر فلان جای دو و باغ ال کوخو اونجا ساتری و سگ جنگیث اونجا برو در فلان جای فلمک خوبش از خاطر انسان مسلمان صبر بر در معصیت چی که انسان در مقابل معصیت حوصله بکنه خدا زود به گناه داخل نکنه و از وسایل معصیت خدا دور بسازم میفهمم که نفس سر من غلبه داره من با خدا در کدام گناه مبتلا فورا فوراً روزه بکنه یگر روز دروسی روز 4 روز 5 مسلک سال روزه میگیرن تلاوت قرآن بکنن خود به خود شیطان از پیشش میگروزن اما تو میگی والله من میخوام که گناه نکنم لکن تلویزیون از صبح تا و شام دگم دنگ دنگ دنگ نگ نگ نگ ولی سر چالون است در گوشک که موبایلش در درجه ما چیدا گرفتی که بیکار ماندی اون رو چالون کو اون رو سر خودت شیطان دعوت میکنی شیطان وقتی که خود گفتی شیطان قرار در تلویزیون در تلویزیون با موبایل هست در فلانی هست لکن در تلویزیون باز چیزهای رحمانی هم هست که انسان مثلا میشه از تلویزیون استفاده مثبت بکنه، از اینترنت سایت های اسلامی رو پیدا بکنه، از او استفاده بکنن طلاوت قرآن استفاده بکنن ما مثلا روز ایران پرود ایران پرود رو گرفته ایم سریال چیز بودک سریال همی یوسف علیه سلام ایستانو چیزش اینه باز کنین دات اونا یوسف علیه السلام اگر بیکار مادی سال کو بیبی بی چقدر افت داشت پاکی داشت چی شخصیت داشت هر کلمی از رو روگوش بگی برت می‌ماند اگر چی بعضی مشکلات داره یا قسمت از گرد گرد قبر چیزها رو نشان میده مردم بعضی چیزها خلا داخل میکنن از این خاطر اوضاع بارند ما آدم ممکن است کارای خوب شه میگریم کارای خراب اعلام میکنیم. دیگه است. صبر در طاعت صبر در معضل سیومش صبر در مصیبت اگر کس برد اذیت رساب برد گپ خو تو کی میگی من مسلمان هستم خوب آدم هستم خوب آدمی تو چه وقت ثابت میشه در وقت کس این چیز نگوید نه خوب آدمی انسان وقتی ثابت میشه که یک انسان سر انسان عمل میکنه دشمن میتا گپ بد میزنه گپ زشت میزنه حرکت زشت میکنه بر اخلاقی میکنه از برف با مخاطرت میپرت دیگه اینش اینش گوید و صبر داشته باشییره میگن صبر در چی در خداوند مطال جلجالهو کل ما شما را توفیق نسیم بکنه که مطابق سوری و زندگی 24 شارساتی خود را ایار بکنیم سبحان ربی کربل عزتی معصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على رسوله محمد و علاله و اصحابه اجمعین اللهم نوبر قلوبنا بالقرآن العظیم قلب های ما را با قرآن عظیم و شان منور بساز و زین اخلاقنا بالقرآن العظیم وخدايا يَا وَزَيِّنْ أَخْلَاقَنَا بلقرآن العظیم و خدایا اخلاق ما را زینت بته توسط قرآن عظیمشان یعنی که اخلاق قرآنی داشته باشیم و ادخلنا فی الجنتی قرآن العظیم و خدایا ما را توفیق بده که به قرآن عمل بکنیم و عمل ما به قرآن سبب شبه که وسیله شبه ما را به جنت ببرند. و نجدنا من النار بلقرآن العظیم و خدای ما را با عمل کردن به قرآن از آتش دوزخ نجات بتیم اللهم ربناتنا في الدنيا حسنتا وفي الآخرة حسنتا وخنا عذاب النار تروردگار آخرين كلمة كي الزبان ما خارج مشى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم